گذاشته نام سورها مانند سور انفال بر روی بچه چوک می داره. حالا این نام برای بچه‌ها ها برای برای بچه ها برای بچه, بچه سور نامه دیگر بذاره گذاشته نام فرح از نظر ادبی آیا ایرا دارد یا نه نه ایرا این خوشحال نام حالا در مورد نام قبلن صحبت کردیم نام هم یه فرهنگی میخواد. خواد نام داره یه فرهنگی خاص خودش هست فرهنگ نامگذاری چی؟ فرهنگ نامگذاری اینه که نام امامیزاری با نام صالحین و بگذاری. علی بزرگ مردان دو بار چی آن؟ نایاب، نام از کسی نه گذاشت. فرهنگها نگامی نگاه می‌کنن، نگامی نگاه می‌کنن، به ما هم تماس می‌گیرن که نامی بگو تعالی کسی استفاده نکرده. ما می‌گیم که نامی کسی استفاده نکرده، نا نام نیستو. هر نام قبل نام کسی بوده، پس استفاده شده. از زیاد دو نامی پس بزار اولاق. بزار گذشتن چون اینکس استفاده نکرده این بزار دنبال این که اینها که غلطن اینجوری نه فرهنگ نامگذاری رو فرهنگ اسلامی بکنید و فرهنگ اسلامی همین است که نام در بچه ها تأثیر گذار هست اگر نام صالحین این باشه تأثیر گذار در خود امت گذشته ما همیشه نامهای خوب را می‌گرفتند آن انبیاء را می‌گرفت چون که صالح‌اند. و در فرهنگ امت‌های گذشته در این امت هم فرهنگ همین صورت بوده. زمان صحابه کرام وقتی که چند نفر در جنگ در غزوه بیر معونه شهید شدند، یک از اون‌ها مرزر بود. و حضرت زبیر رضی الله عنه بچه‌ش مرزر گذاشته چرا؟ گفت این مجاهد اونجا شهید شده پس این ارزش داره این. اونا برای خودش گرفت و رو بچه‌ش گذاشت. هر نام خوب هم خوب نیست حالا بعضی فرهنگو نگاه میکنه آه این نام ماندیش خوبه هر نام خوب خوب نیست مثلا بعضی از بس از واجبان طهاران یکی زینه اسم بره بود و یکی نفت تغیید برره یعنی نیکوکار صالح گو تو زینه بی چرا گو من نمیخوام مردم بگن که خرج من عند بره که پیغمبر از نیکی بیرون رو باد وقتی از, وقت از خونه بیرو بیرون بیرون گو جمیه میگه از خ از خونه نیکی میخونه فلانی نمیخوام بگم که از خونه بره رفت بیرون چرا چون نیکی بیرون رفتن که ما همیشه در نیکی هستیم پس بعضی نامی که ما درست داری هم درست نمی برای گذاشتن که نام بعضی اسامی به اصطلاح رو میگیرن میکائیل میذارن علی میکایل که زیاد شده و تو بعضی میخائیل چون میخائیل یهودی ها میگیرن من میگم آبا زمینی گذاشتی آسمانی ها رو آن از آسمان شروع کردن، گزاشتن اسامی فرشتهها، بر بچه ها مکروه است. امام مالک رحم ولاد بیفرم مکروه است. و هرگا گفتن مالک مکروه تحریمی بزار در جبرائیل هست بین قرای عربی یا فلان قالی جبرائیل هست میکایل است. این درست ما هم کلاس داشتیم که اسم پدرش جبرائیل بود. فلانی فرزند ولد جبرائیل وقت حضور یامی کرده اونجا چونکه اسم پدر او پاکستان. داخل دارلون کراچی هل انگا حضور فلانی اس اسم اسماعیل اسمائیل ولا جیبرائیل و امی کو حاضر اگر اصلا سوانی شد تو پر فرزان جیبرائیلی وہ جیبرائیل دارے بچے نگو دے وہ اززواج نمی کرے درست نیستن یا برادران افغانی بسم الله اعوذ بیاللہ اینہ سبحان الله اینام خوب نیستن بسم الله اسم نیست جس خدا هست سبحان الله منعام نگو زارید ناراحت نشید چون کی ناد باید گفته بشن تا فرهنگ ها رو ما درست کنیم پس فرح بذار فره معنیش کا بدی نیست کسی بگذاره اما سعی کنید که همیشه در بچه, بچه حقی بر شما داره و حقی بچه همینه که باید اول اولی کاری که میکون نامش باید درست انتخاب کنید چون بچه حالا نه مسخه‌ای حالا شما میذارید فکر این می حالا خیلی نازه این نام خیلی نازه. اما وقتی پیرشو باز نازه باست که بعد که ناز نمیشه دیگه پس وقتی کودک از نازه اسمی باید برای آیندهش فکر کری برای آینده اسمش خوب هست یا خوب نیست حق پدر از برای انتخاب اسم خوب و این بدانید که اسم تاثیر گذار هست بر بچه اگر اسم اشتباه باشه اثرات منفی رو میگذاره بین صحابه شخصی بود حزن اما پیش نبی کریم. اسم چی بود حزن پدر حضرت مسیب سیده برمسیب که از کبار تابین هست که در بزرگی حزن بود نبی که فرموده که حزن رو بردار تغییر چون حزن دو معنا داره سخت تند و همچنین غم گفت این نام بردار گفت نه یا رسول الله این یادگاری هست از پدر میگه بعدها همیشه این حضونت و سختی در ماه دیگه همیشه مای ما کاش و روز من تغییر میدادم پس نام تأثیر گذار نام بذاری آینده بچه، اینجا دیگه خراب نشه نامهای مسخره مسخری نذارید جیلو پیلا نذاری نامه خوب بذارید که به بچه اثرات خوب